کلیلی نویم، آرام گری، کلیلی چاکه زوربه حالتکانی فشل هنان، لکسان اگر رو جدن، لون نگیشتون اوکاتی خوب دستا و ددن، چند سرکوت نو نزیکن توماس ادیسون لسالی هزار و هرسط و لگنده چی بچوک بناوی کف لدوری نزیکی چورصد میل لپاریس و لویز برای لدائیگ من مندال اگ بو چاوی جوانی هبو، برادیک هرکس بی بینی بای ایرهی پیدا با جوری تمنکی وگ مندال اگلپله کی برزی زیره چی دا بو هند یک زر یارمتی باو چی لکار دا دا که درست کرنی زینی از پول غاو بو زر چند لکه تک دا باو چی سرقالی که رکی بو درسی چی گو رو چه کشیکو پارچیک چر میبرد پارچه چرمکه لسر زوی دانو درزی لسر چرمکه زیجیر کردو بچه کشک لی داو باو نیازهی درزی که بکاتن سر مکبر گریه شی جوریه بود و درزیکا، درزیکا دادستی تراز او چایی برین درکرد. برینه دروست قوری درس کرد، که وقت سر و دگریا، لتا و آزار هر هواری دکرد. برینه که زور بخیرایی، بوه ویهاو کردنی دمایی بیناییو، لکو تایدا چایی تپی، بتوایی بینایی ل دادسته. کاتک تمانی گیج تسه صلان تا وقتی تریشی توشیهاو کردن بو، بیل، بتوایی بینایی بو. دویم حالا پرسی. بوی چی اهم روداونا به سر من دادید؟ حستی بغمباری تنهایی دکرد. روزاکان تیپر رینو باو چی نردی بو انور گیرتل سر پیانو جنین بیل هو گری پیانو بو بو له حتویک لجنیندا کاتک 18 سالان له فرانسادا نو چی زور گوری پیدا کرد. له 18 سالی دا دستي بخوندن کرد له پیمانګې نتووی بو نابینا په پاریس. له هر یکلاب ورکان موسیقه او ماتماتیک و ځانستکانی جغرافیه دا به تواوی پیګیشت. وانا انا کوت نووفر کنی خو نه ول پی مانګه پیتی گوری کانزایی ک د بردراو ب کا غزا ودل چینره من د لکنی شفری د زلیدان پیته کانزای کنده کرانو شوی پیته کان یانداسیو لویز بروی وهاب ک امرګه چون چونکه دریجی پیته کان د گیښ نسې انس سره او زورش بون ام بروی و لیکر کرکاتیچ زور به با سر باو قناعت و که هر دبی رگاهی چی باشتر لم رگاهی فرکر نه بی دستی کر با درست کرنی پیتکان لپیستی چی استور تور بلام لم رگاهی دا زور هیواش برو پیش دا چو لبر او ناراحتی و مندویتی لکاتی جبجه کردنی دا رو بروی دبو کاتیک تمنی گیشت بی سالان وگ ما مستایک لپی منگه دا دام از را روش د قاوه خانه اگل دا دانشت بو جوی لکس اگل دیگو دیگو دیش رگای چی نوی دوزی و تاو بو پیوندی کرنی سربازکانی بسر بازکانی تی دا پیستی چی خوش کرای بیشه و هیمای جیاواز بکاره ناو که پیشتر لسر هیماو نشانکان ریکو تنها بوا برایل که جوی لما بو لخوشی دا بازی داو بوتی دوزی موا دوزی موا لماوی هفته اگده چایی با افسر فرانسی که کوتو در باره او رگای بکاره ناو پر سیاری لیکردو افسر داشتید که ما لغت نشانه گاری کرد رو درست بکنند و پستان لسر پارسکه غازه. بونمونه یک خال منای چون پیشوا و دو خال منک شنا و بودوا. او سیستمی افسرکه پیر ریز دکرت و با کارهانی دوان ذخالو. افسرکش پرسیاری لیویس کرد. علاوه بر دایبام راجی بتوانه همو بی تکانی نوسین درست کت. ولای ملیویس از گیان ابو بودی او یکمین نابیناده بدت سپاسی دکات. برایل دستی کر بکر کردن و سور سر اویده بگه تا آمانده که یو کم ترین جماره گنجایوی خال بکر بینه تا فیر بونی ام شواز آسان بید. لسالی 1829 لدرست کردنی پیتکانی نوسین دا سرکوتو با بکرهنانی تنها شش خال. پاشن دستی کرد با تاقی کردن و بکرهنانی لپیمانگه دا. لسالی 1839 رگا که بلاو کرده و تا دازی نوکی لجیهان دا عشق را بیو بزن ره. لوانش خودی پیمانگا اموانیتی دا, دا وانه تي پاشان یې کمیږتي دانا ک ورجرانی کومل ته مې چی شاعر انگلیزی نابینا بینه جامیالتون لخوا ګرتبو برایل بو اوی بنوسه درزی چی او یې بتونه بنوسه درز یې چی ګوري به کار هنه او درز یې له منډالی دی بو هو یې چړکدنی سره یې ام ده هنه نه هر قبول نبو دانی پیدا ندمه برایل خو به و بر دوام بود فرکردنی امر راجع به اقتابی کنی. تنزاره چیش حالی دا پروژه که پیشکش با اکادمیای فرانسوی بکات همیشه پروژه که رفظ دکره. راجع تیانی چگل چی اقتابی کنی لسر شانوی چی جوری پاریس پیانوی دژن کلاژنینی پارتموسیقیاکی توابو آمد بوان بدال بونی چی زوروا تپلای انبوله داداو وق در برینی رزلاگرتن لو آدای جوانه ام قطبی همیان هستن انصارپی. قطبی کالبین را کانزیک با گوتی من نیم شایسته او همو رزلاگرت نبم. بلکه او کیسه شایسته‌ایتی او پیاوی کفیری شوازه به ویناو نا یا بکی کردم. استا او نو جوشو بتنهایی و دور لهموان هموان ل جګاده کوتوه لدوی اوه روجنامه گووارکن حلمتی بهیزی پروپاګاندا اندس پیکټ کتی دا پشجری لویز برایل د کرم پالپشتی انګری پاپشتي دوزینو غورکن اند کړ لنجامي ام پروپاګاندا چرو پرده حکومت فرانس دانینا بداهینان هاوری کانی ام حوالا خوشهان با برایل ده برایل لکاتیگ ده که فرمیسک چاوکانی گرتبو پیگوتن لجیانم ده سی جار گریه هون یکمیان کاتیگ بینائیم لده زده دو هم جار که پیتکانی نوسینم دوزیوه هم جارش سی هم جاره اما و های جیانم بهدر نچوه لسالی 1852 لطمانی چلو سی سالی ده برایل بنا خوشی شر پنجا کوچی دوائی کرد د 1920 1929 د دويټ 100 سال بسره ده هنانه مزنکی برایل د فرانس او اهنګ چیچراو پېکره چن له ګوندکی خويده و دروست کړ. کته پردل سر پېکره کلابره سدان ناوینه د ستکان یې امرس کړل او ثابت ونن دز بهینن برخصاری او پیاو ده کړيګای جیانی بو روشم کړه. امرز زیاتره 2000000 ناوینه له جهان دهن قرضباری سپاس کړي او پیاو. خیارمتي داون لښو نو نو سینو گیشتن. بابارستین پلی گنجاوده. همو امبد استناماز نه، با پیاوند استی پیکرت کجیانی بوی آرامگری دانی خویو کسانی دیکه دا باخت کرد و به توابیله هزی آرامگری تگیشتم. با امپرسیارد لبکم. تنزار خداو بداست و با حلقیست یک تنهال لبر نبونی آرامگری تاو. کسک دناسید کشور لسهامان و کاتی خارج کرد و به بدیهنانی خوان کنیو معویتی باشی شیبری وا تا تیل خالق ده دا خوی داو بداست و با هوی کمی آرامگرتنی د وستين کڅګ د لټ آرام نمماوه آرام نګرت نه چکهلو هو کارانه د های بیوري فشل هینان چون بر له وی بغی ته زور بز زیاد رو به روی کوسبو ريګرو برنګاربونهوي کاكي اگر آرامگر نبي او کوسبانه تفرنا کوي واز لبدې هیناني امانځکان دهین اندرو کارنجي گتویتی او مرو وی له سرکوتونه بی سرکوتو نوي له هموش بلان تو ز باشترین چهار سر به اشترین چاره چیان وګرفته کن آرامګرند چی اند به د خوای ګوره و بشری صابرین د ګنجې به توای پروش بی تو زیچی چی گوره و زانیاری زور طبیعت و نه کانت بخیت ابوار کار فکر و بسرکوت نه و بسټی بلمګر آرامګری تاود نه به او تنها ام خاله بس دبیت بوت یک دان ولناوردنی خوږګو خو نه کانت مابز آرامګرتن هیچ هیڅ کارګنه کی بوګشتن به با آرامگری رساي خويج او کار چي با زحمت و آبستبونه. عليره دا آرامگرتن تنها بو برجا ونتي تو کار دکه. پيوسته همو تو آن کانت با خي تکار بو بديهناني خونه کانت. لهمان کد دا بید با توایش پيوزد بيد با آرامگری او. نورمان فینسیمبل لکته با کي جهزی بيرکرنا و كانگو تو يهی به حيوام با. آسایي دواهمين كليلي نييو کاملا كليليک درگاپ کاتوا. هر وقت کس و مزنکان دزانن گورترین دست کوتکان دوای اووبه د ساعتون کګیشتونه ته او خالی رايډو رو برکيان سره او بو او بیرو کيان او دسکو تبهج رګناکرد بدز بهند هر چك روب پیوست خود و واستب کید به بدیهنانی خونکانتو خاون امرونتو آرامګری بیت تو او کسبه له هر ګرفتګد روبروی د بیتو د الفتی 400 د بینیتو نګ او کسې له چی بورغساو ده گرفت او واستنګ د خلقینه استابو ګیشتن به آرامګری امر سلطات پیش کش دک یچګلو استان ګوبرنګاریانه روبرو دابنو تومرکه دو پنځه رګا تو کده که به کار یې بهنید بوز البون به سر او استان ګوبرنګاریته سه بدوی که سګ د بغرې کجای رېسته متماند متمنند به زانیاری ولې هټوی هیو و ورد وهای به توانید بداد بدات لګیشتن به چاره سره بو روبروونه ام گرفتہ څوارم سرجم چاره سره ګنجاو کن سنجینه پنجم دز جولو حل سکو وکړو پروشیو به هیزو آرام بگره در گنجید استا تنه ها سنهانگای و اگل سرکوت ناو دور بید همیشه شیادت بیت. همو ساعتی گوه هب جی کتا ساعت وقتی جیانتا با باوره هب جی به امیده هب جی به خوشویستی هب جی به تی کشانه به های جیان بزن.